سلام می کنم خدمت شما عزیزان نجفی هستم مؤسسه وبسایت روانشناسی و موفقیت قدرت نامحدود و همچنین مدرس دوره هیپنوتیزمی که در حال حاضر دارید توش شرکت می‌کنید و اون رو آغاز کردید دوره هیپنوتیزمی قدرت نامحدود یکی از دوره‌هایی که واقعا بدون اغراق ارزشش با طلا و فراتر از اون برابری می‌کنه یعنی واقعا نمیشه ارزشی گذاشت روی این دوره و روی این ساختاری که در بخش کلاس‌های دائمی و دوره‌های جامع قدرت‌نماتو در وبسایت ایجاد شده بسیار ساختار زیبایی هست بسیار ساختار مفیدی میتونه باشه برای کسی که می‌خواد مطلبی رو یاد بگیره چون به صورت مستمر داده‌ها و های جدید کلاس اضافه میشه و کسایی که در کلاس ثبت نام کردن میتونن تمام ها رو روز به روز ببینن کسایی که همراه وبسایت بودن مطالب قدرت نامحدود رو در این سال‌ها خوندن آشنا هستن که نوعی از هیپنوتیسم که در قدرت نامحدود آموزش داده میشه در هیچ کجای جهان یافت نمیشه و این چیزی که با یه جستجوی ساده و سری میتونید ببینید که توی قدرت نامحدود ما داریم ابعادی از هیپنوتیسم رو به شما آموزش میدیم که یونیک، منحصر به فردی که خاص های خاص روی دیگران روی خودتون ما در این دوره تمامی مسائل مرتبط با هیبنوتیز رو مورد بحث قرار خواهیم داد. مثال های خیلی عالی عملی برای شما خواهم زد. و انواح اقسام جزیاتی که درباره برای هیبنوتراپی، هیبنوتیز، مصرگذاری روی خود یا دیگران همه اینها رو ما بررسی خواهیم کرد. این دوره به شما کمک بسیار زیادی رو میکنه. خواهش که دارم اینه که فایل ها رو حتی اگه به فرض ممکنه درباره نوتیز مطلبی خوندم یا کلاسی شرکت کردم من اینه که حتما فایل ها رو دونه به دونه و به ترتیب دنبال کنید جهش نکنید و زمان بذاید تمامی فایل ها برای شما نقطتی آموزنده خواهند داشت من این تصمین رو. به شما میدم مطمئن باشید فقط کافی که اونها رو منظم گوش کنید این دور زندگیتون رو میتونه عوض کنه و خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت شد که در بخش، کلاس‌های دائمی قدرت نامحدود بخش دوره‌های جامعه قدرت نامحدود زمینه هیپنوتیزم هم وارد شد دوره هیپنوتیزم هم در واقع وارد عمل شد آموزش‌ها شروع شد و خوشحال هستم که همراه هستید با این دوره با ادامه فایل‌ها همراه شید